صوري فهد اعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما بنام الله كه بخشاندهب با رحمت است ما تو را یک پیروزی آشکار بخشیدی، تا خداوند گناهان گذشته و آیندت را بیامورزد و نعمتش را بر تو تمام کند و به راغ راست و درست هدایتت نماید و خداوند تو را به یک پیروزی شکست ناپذیر یاری نماید. او آرامش را بر دلهای اهل ایمان فرستاد تا پیوسته ایمان بر ایمانشان بیافزاید. بدانید لشکریان و آسمان و زمین همه از آن خداست و خدا آگاه و حکیم است تا مردان و زنان اهل ایمان را به بهشتی که نهرها در آن وارد کند و جاودانه در آن بمانند و گناهانشان را بپوشاند بدانید که چنین چیزی نزد خداوند کی روزی بزرگ است و اینکه مردان و زنان منافق و مشرکی را که بر خدا بدگمانند مجازات نماید آنها در محاصره بدی و پلیدی هستند و خداوند بر آنها خشم گرفته و نفرینشان می‌کند و جهنم را برایشان تدارک دیده است و چه سرنوشت بدی است این جهنم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لشكريأن آسمانها و زمین از آن خداست و او قدرتمند و حکیم است ما تو را به عنوان پیامبری شاهد مجد دهنده به فرستادیم تا همه به خداوند و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و گرامیش دارید و او را هر صبح و شام تصویح گویید کسانی که دست بیعت به تو میدهند در حقیقت با خدا بیعت کردند دست خدا بالای دست آنان است پس کسی که عهدش را بشکند به زیان خود رفتار کرده است و هر کس به عهدی که با خدا بسته وفادار بماند به زودی او را پاداشی بزرگ عطا نماید به زودی اعراب بادی که در حرکت به سوی مکه با تو نیامدند خواهند گفت ما گرفتار اموال و خانواده شدیم پس برای ما از خداوند آمرزش بخواد، حالان که چیزی را بر زبان میآورند آورند که در دلهایشان نیست. بگو اگر خداوند بخواهد آسیبی به شما برساند و یا نفعی شامل حالتان کند، چه کسی می تواند در برابر خدا مانع آن شود؟ بدانید که خداوند از عمل کردتان آگاه است. نه. شما گمان می کردید که دیگر هرگز پیامبر و اهل ایمان به سوی خانواده هایشان بر نمی گردند و به این دل خوش بودید و گمان بد زدید زیرا شما جماعتی نابود شدنی هستید. هرکس به خدا و پیامبرش ایمان نیاورد بداند که ما برای کافران آتشی سوزان تدارک دیدیدیم. فرمان روای آسمان ها و زمین از آن خداست. هر کس را صلاح بداند دامد می میامرزد و هر که را صلاح بداند مجازات مجازات میکند بدانید که خداوند آمرزنده و باگزشت است چون برای گرفتن غنائم ره شوید متخلفین خواهند گفت بگذارید ما نیز به دنبال شما بیاییم. بدان که میخواهند فرمان خدا را به چیز دیگری تبدیل کنند بگو شما هرگز به دنبال ما نخواهید آمد خداوند از قبل بود چون این فرمان داده است سپس خواهند گفت شما بر ما حسودی میکنید. نه آنها جز اندکی درک نمی کنند به عرب متخلف بگو به زودی شما به جنگ با قوم نیرومند دعوت میشوید. با آنها پیکار کنید تا تسلیم خدا گردند چنان که از این فرمان اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما خواهد داد و اگر سرپیچی کنید چنانکه که قبلا هم سرپیچی کردید بیشک خداوند به عذاب دردناکی مجازاتتان خواهد نمود. بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست اگر به جهاد نروند بدانید هرکس از خدا و پیامبرش اطاعت کند خداوند او را به هایی که نرها در آن جاری است داخل مینوا کرد وکس از فرمان هم روی برگرداند او را به عذاب دردناکی مجازات می کند خداوند از اهل ایمان آن هنگام که زیر آن درخت با توبعت کردند رازی است زیرا میدانست در دلهایشان چه گذرد برای همین خداوند آرامش را بر دلهای آنها نازل کرد و به پیروزی نزدیکی پاداششان داد غنایم بسیاری را به دست خواهند آورد و خداوند قدرتمند و حکیم است خداوند به شما وعده داده است که غنایم بسیاری را به دست خواهید آورد ولی این یکی را زودتر به شما عطا کرد و دست آزار مردم را از شما کوتاه نمود تا نشانهای برای اهل ایمان باشد و شما را به راه راست و درست هدایت نماید و پیروزی های دیگری که شما توانایی بران ندارید اما خداوند بر آن کاملا احاطه دارد زیرا خداوند بر هر کاری تواناست چنان که اهل کفر به جنگ با شما برمیخواستند بیشک به جنگ پشت میکردند پا به فرار میگذاشتند و عاقبت نیز هیچ یا یاوری نمیافتند این سنت الهی است که از قبل نیز جاری بوده است و تو در سنت الهی تبدیل و دگرگونی نخواهی یافت او است که دست آزار آنها را از شما کوتاه کرد و چون در دل مکه پیروزتان کرد دست شما را نیز از آنها باز داشت زیرا خداوند به عمل کردتان بیناست آنها کسانی بودند که به حقایق کفر ورزیدند و شما را از وروق به مسجد الحرام باز داشتند و نگذاشتند قربانیهای شما به قربانگاهش برسند و هنگام فتح اگر مردان و زنان با ایمانی در این میان که شما آنها را نمیشناسید، در زیر طاقت و تازتان از بین نمی و نادانسته مرتکب گناه نمی خدا دست شما را از کفار باز نمی داشت خداوند هر کس را بخواهد مشمول رحمت خیش می کند بدانید اگر اهل ایمان و اهل کفر در مکه از هم جدا بودند بیشک کافران را به عذاب دردناکی مجازات می کردیم هنگامی که کافران تا دل به تعصبی چون تعصب جاهلیت سپردند خداوند بر پیامبر و اهل ایمان آرامش الهی را نازل کرد و آنها را ملزم به نگاه داشتن حرمت حریم الهی نمود. زیرا آنها نسبت به هر کس دیگر استحقاق و اهلیت آن را داشتند بدان که خداوند به هر چیزی آگاه است خداوند را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت یقینا همه شما انشاءالله در کمال امنیت وارد مسجد الحرام خواهید شد در حالی که سرهای خود را تراشیده و ناکنهای خود را کوتاه کرده اید و از هیچ چیز خوفی ندارید. خداوند چیزهایی می‌داند که شما از آن بیخبرید و غیر از آن برای شما پیروزی نزدیکی قرار داده است. او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاده تا سرآمد همه ادیان دیگر گرداند و برای این نکته شهادت خداوند کافی است. محمد رسول الله والذین معه اشدوا وعلى الكفار محماه بینهم. محمد رسول خداست و کسانی که با او هستند نسبت به کفار سرسخت و نسبت به یکدیگر با عطوفت و مهربانان آنها را میبینی که اهل رکوع و سجودند، و همباره فضل و رضای خداوند را جستجو می کنند. نشانه آنها اثر سجودی است که در چهرهایشان نمایان است. وصفشان در تورات آمده و توصیفشان در انجیل چون گیاهی است که جوانه اش را برآورد و به تقدیات آن پرداخته تا محکم شود و بر پای خود بی و کشاورزان را به شگفتی دارد و کافران را خشمگین سازد بدانید خداوند از میان آنها کسانی را که به حقایق ایمان بیاورند و عمل کردی نیک و شایسته داشته باشند به مغفرت و پاداش بزرگی وعده داده است وعد الله الذين آمنوا و الصالحات من و اجرا صدق الله بلند مرتبه از